بخش 22م. دوم صبح رو را وصل کرده نکرده دوباره تلفن زنگ خورد تقریبا از یک متری روی تلفن شیر زدم. هیچ رقیب دیگری داخل اتاق نبود فقط دوست داشتم هیجان بیشتری به کار داده باشم افسر خانم بود زن دوم مشریشو الان زن دوم است. ولی اگر بخواهیم از زن اول اولیش که پارسالی ها دومش سیخ شد حساب کنیم زن سوم می شود از طرفی چون مشریشو بعد از او یک زن دیگر هم دارد نمی به افسر خانم زن آخر گفت. زن نسبتا بیچاره بیچاره است. هر از گاهی به شاباجی تلفن می کند و از دست شوهرش نکانال می کند. چون مشریشو توی تهران همی یک فامیل را دارد همه ی زنهاش به خودشان اجازه میدهند دهند که به شاباجی گل کنند. گذاری کند. خدایش مرد بدی هم نیست اما زنهاش از دستش به هوارند. اینجوری نگاهش نکنید. ختم زنبگیرهای آدم است. کافی اراده کند تا یکی از زنهای سیغیه‌اش را عقد کند و خلاص. من خودم بچه که بودم عروسیاش را با همین افسرخانم رفتم. خیلی باش حال کردم به پسر. تیپ دامادی زده بود. پاپیون و کت و این چیزها. انگار نه انگار که غیر از این باز هم زن دارد. رخصی می کرد که بیا او ببین. افسرخانم گفت: "الو سلام عباس جان. خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟ خونواده خوبند؟" شیما جون مامان آقا سید اینا همه خوب هم؟ شابجی خوبه شاباجی خوبه شاباجی هستش شما بجای من چی به این زنک احمق جواب میدادم خوب بود گفتم خوبم شما خوب هستین شاباجی نیستش هه کجا رفته رفته روزه دروغم چی بود شاباجی جدا رفته بود روزه کی رفته چندو وقتی نیست شاید یه نیم ساعتی بشه شاید هم کمتر باشه ممنون دوباره زنگ میزنم تا اونجا که میدونم رفته خط منعا که کی بیاد اگه کاری چیزی دارین بگین من بهش میگم نه ممنون باید با خودش حرف بزنم نه بگین راحت باشین در مورد مشیشوه نه نه مسئله هستش که باید با خودش صحبت کنم چرا خیالتون از حل لازم راحت باشه من از قبل در جریان کار هستم اگه حرفی هست میتونین رو من حساب کنین میخواستم خجالتش بریزد بلکه خودش را سبک کند اما افتاده بود روی دنده لجبازی فقط خر خودش را سوار بود نه من باید با خود شاباجی حرف بزنم متوجهی؟ نمیدونی که میاد؟ نمیدونم تازه رفته باید میدونم بخواد و بیرون بمونه حتما پیداش میشه قبل از خداحافظی هم بهش گفتم که خدا صبرش بدهد نفهمید که چی چی بهش گفتم چون گفت دست شما درد نکنه سلام برسون و کرد دلم دا نمیآورد نمی آورد خواستم بروم جلوی در مدرسه پی حسن حتی تا پله های پایین هم رفتم ولی دوباره پشیمان شدم برگشتم یک آینه قدی توی پاگرد هست که همه آخرین وضعیت قیافهشان را توش چک میکنن من هم پاری وقتها لپم را جلوش باد میکنم یا عداهای دیگر در میآورم. خیلی هم که خول می شدم دهنم را پر از آب میکنم و روش میپاشم. بعد رد قطره را ها رو می گیرم ببینم کدامشان زودتر روی زمین می اینبار این بار عشقم کشید که لپم را از تو با دندان گاز بگیرم چون اینجوری حالت لبها خیلی بامزه می شود. اما شکلی جلو آینه وایستادن هیچ حرکت اضافه نکردم فقط وای دکتر گروهی میگوید ایستادن جلوی آینه اعتماد به نفس آدم را زیاد می ولی آقا جون که میگوید این کارها باعث می شود عقل آدم گرد شود. با اینکه خودم دکتر را خیلی قبول دارم ولی نظر آقاجون جون بیشتر به درم می نشیند. کارم که با آینه تمام شد رفتم بادا. اگر فکری به حال خودم نمیکردم باید تمام روز را مثل خوک تیر خورده بالا پایین می کردم. دلم گواهی میداد که دیر یا زود خودشان میایند سر وقتم. ولی خوب که چه بیکار که نمیشد نشست. زور که شد بادو با رفتم کوچه و روی پله جلوی نشستم تا حسن از مدرسه برگردد. حسن مثل حسان خورده نبود که سر و کلش هر سری از یک جا سبز شود. همیشه مثل بچه آدم از همین سر کوچه که خانه ما بود میآد نه از آن یکی سر. اگر بعد از تعطیل شدن مدرسه نمیخواست فوتبالی لیسسب لیسی چیزی بزند معمولا سر ساعتی یک می رسید. یک یک و پنج دقیقه بود که آمد. من را دید آمد سمتم به خاطر مسئله دیروز ممکن بود یا شرمنده باشد یا اینکه دوست داشته باشد خونم را تو شیشه کند نزدیک تر که شد روم را آن طرف کرد رازم بود ناقافل محکم با مشت گذاشت توی پهلمو گفت کارخرسی گول ظاهر این کارش را نخورید یک جور معذرتخواهی قدیمی است که هنوز این طرف ها دارد کار می گفتم برو رو بد باید بیام تو یکیو ندارم لوس نشو کل خراب؟ حالا یه حرفی زدیم؟ جدا گفت حالا ما یه حرفی زدیم به آیه های قرآن تنها کاری که دیروز نکرده بود همین بود جوابش را ندادم گفت آ چه نازو داره حالا دشمنت مننت میکشید ولی نه اونجوری که درم بخواهد. دوباره که جوابش را ندادم گفت حالا چرا از این ننت ننتو گرفتی ببین کارت با غلط کردم را میفته غلط کردم بابا بعد تا جایی که میشد گردنش را دراز کرد و لبم را بوسید کاری که چند سال بود در حقم نکرده بود. عوضش من هم کتا آمدم و در مورد کنترل خشم و احساسات در هنگام عصبانیت کمی براش صحبت کردم. او همچون کارش گیر من بود همه حرفام را قبول می‌کرد. دور برداشته بودم. دقیقی آدم نیست چقدر نصیحتش کردم که یک بارگی دیدم از کوره در رفت. خوردم عباس می کنی یا نه؟ می هنوز آدم نشده. بود. ولی هرچه که بود من هم دیگه لب مطلب رو تو گذاشتم. اردوی ما چند لحظه ساکت شدیم تا اینکه خودش سر حرف رو باز کرد. میام هم بزنم خونه یه ناهاری بخورم میام پیشت. نه. چرا نه؟ امروز نیستم واسه. نیستی کجایی؟ وصجی کار واجب دارم. تو شماره لاله رو به هم بده من خودم بعدم میام بهت سر میزنم. شماره لاله رو وقتی کسی بخواهد از زیر کاری در برود از اینجور سوال ها میپرسد گفتم خودش گفت بهش زنگ بزنم خودش؟ که گفت؟ تو بمیری گفت چی گفت؟ گفت تو بهش زنگ بزنی؟ آره همون شبیه که خونه مجدی نبودیم تو توی بقره سروش بودی نشنیدی سیبیلا تو کفن کنم گفت آتش گرفت ولی فاشم نداد یک دلیل مهمش این بود که تازه بابت فاشایی دیروزی به غلط افتاده. گفت حالا کار چی هست؟ یه مشکلی برام پیش اومده باید باش درمیون بذارم. خودش گفت شماره از تو بگیرم میخوای ازش بپرس میدونم یعنی میگم در مورد چیه؟ اگه سوالی داری از منم میتونه بپرسی آخه یه مشکلی برام پیش اومده بعد باش درمیون بذارم. خب آخه چه مشکلیه که یه مشکلی برام ۹99 ۶ و پنج تا صفر کاری که بعد بکنید این است که خیال طرف را از اینکه نمیفهمید یا اینکه نمیخواهید بفهمید راحت کنید. من کارهای خیلی سختتر از این را هم همی شکلی انجام داده‌ام. میشد صبر کنم که لاله تماس بگیرد اما صبر نکردم. شرایط جوری پیش آمده بود که بدون اینکه جلب توجه کرده باشم، می توانستم بارها و بارها با لاله اختلاط کنم. آب هم از آپتیکان نخورد. شلاقی رفتم بالا و شماره را گرفتم. هنوز بوغ اول نخورده بود که زرتی قطع کردم. چاره چه بود؟ اگر تلفن رو برمیداشت می‌خواستم چه غلطی بکنم؟ حالا هیچی هم که نمی‌گفت. اگر فقط گوشی رو برمیداشت چه کار بعد می‌کردم؟ قلبم مثل گاو میزد. دوباره شماره رو گرفتم. خواستم دوباره قطع کنم که تلفن بوخ خورد. بوغ دوم، سوم اینقدر این قدر برای خودش بوخ خورد که خود به خود قطع شد. راستش بعد هم نشد. حالا شما رو هم رو که میدید حتما خودش تماس میگرفت. به دقیقه نکشید که تلفن زن خورد. چون هیچ احد و ناسی غیر از لاله نمیتوانست باشد به اندازه چهار تا بوغ معطلش کردم که یابو برش ندارد. بعد صدام رو صاف کردم و گوشی رو برداشتم. الو؟ الو سلام. خودش بود. گفتم. سلام شما؟ اگر آن روزها دوباره برمیگشت مهال محال بود این حرفم را دوباره تکرار کنم. مسخره بازی هم حدا حدودی دارد. گفت. منم لالم. خوبی؟ اوه ببخشید. من منتظر تلفنی بودم. این بود که بشنه ای وردم. هیچ ربطی نداشت. والا، بلا هیچ ربطی نداشت. گفت. مهم نیست. زنگ زده بودی کارم داشتی؟ که؟ همین سه دقیقه پیش. خودم را زدن به فکر کردن آره آره دو سه دقیقه پیش بود زنگ زدم بر نداشتی؟ اما اگر بگویید یک کلمه اضافه تر گفتم نگفتم گفت داشتم با حسن حرف می زدم نتونستم جواب تو بدم بی همه چیز هر جور حساب کردم حسن نمیتوانست جلوتر از من به لاله تلفن کرده باشد غلط نکنم همش تقصیر آن یک باری بود که زنگ نخورده قطع کرده بودم گفتم اچه چه تفاهمی منظورم در آن لحظه چه حسن تصادفی بود که تو مدت تو درستش یادم نیامد سوء تفاهم؟ چرا سو تفاهم؟ هیچی شوخی کردم چه باید میگفتم؟ گفت خب حالا چی شده؟ بگو گوشم با توه اگر میگفتم هیچ کاری ندارم حق داشت خواهر و مادرم رو بگوید برای همین لب از لب با نکردم گفت چی شد؟ پس چرا ساکت شدی؟ وای خدا یه چقدر ناز حرف میزد گفتم نه ساکت نشدم پس چرا چیزی نمیگی؟ دارم گوش میدهم خودش گرفت که برای چی بهش تلفن کردم گفت خب حالا که حرف نمیزنی بذار من یه چیزی بهت بگم میخوام که فردا بیای خونه ای ما حالا شما فکر کنید که من باید چه حالی شده باشم برقی بلند شدم و تمام قد باع طوری شد که سوکت تلفن از جا در رفت فلفور سوکت رو جا زدم و چهار پا نشستم من بیام چرا بیام گفتی کجا؟ فردا بعد از ظهر خونه ما جلسه هفتگیه بچه های دسته باغیر میان باز از اینکه بیدلیل دعوتم کرده باشد خیلی بهتر بود همینم هم مانده بود که سرم را مثل ماه بیاندازم یک کاره بروم خانه هم چه آدمی آن هم یککی و یالغوز. گفتم اما من که هنوز خریدم و انجام ندادم کجا برنشم بیام؟ میدونم تو بیا من واسه اونم یه فکرایی کردم جلسه خوبیه حیفه که نباشی تا آن روز نمیدانستم جایی هم وجود دارد که حیف باشد من نباشم گفتم باشه جلسه کجاست؟ خونه ما فردا سر ساعت پنج پنج صبح؟ حالا کل پس ها هم آن موقع جلسه نمی ها گفت نه پاپا بعد از خودت خودتم هستی؟ دارم میگم جلسه خونه ای ماست تو میگه خودتم هستی؟ حرف حساب میزد گفتم دیگه کیا هستن؟ باقی رو بچه های دستش هستن هادی و سروش هم از بالا سریا هستن دیگه من و تو هستن مجید چی؟ مجید؟ چطور؟ خیلی بدم میاد که کسی سوالم رو با سال جواب میدهد گفتم هیچی میخواستم ببینم هستش یا نه؟ نه، فردا مجی جلسه لیدرشیب داره، نمیتونه بیاد لیدرشیب جلسه ایست که بالا سریعا توش همه دو دوزبازی هاشان را به روز میکنند چی بهتر از این؟ گفتم مطمئن؟ گفت از چی؟ از اینکه نمیاد آره نکنه دلت واسهش تنگ شده خیلی دوست داری میخوای بگم بیاد نه نه نه نه همین جوری واسه محکم کاری پرسیدم خندید و گفت نه حسیسم نمیاد خاطر جمع باز گفت حسیسم باز گفت حسیسم باشه فردا میام اون وقت کجا بیام آدرس منو حسن داره نه قربون آدرس آدرسو بده به خودم من دیگه از اون هیچی نمیگیرم نبودی ببینی همون شماره رو با چه بدبختی بهم به داد بابا جان فردا داری با خود حسن میای دیگه حسن رو پاکی آدم رفته بود تا گوشی رو گذاشتم حسن زنگ در را زد حتما ترسیده بود که نکند بخوام زیاد با لاله اختلاط کنم از پنجره نگاهش کردم دیدم روبروی در دست به سینه ایستاده و یک پایش رو دیوار تکیه داده است من اینکه بگویم حتما میخواست کتکم هم بزند ولی وکیلی این چه طرز ایستادن در خانه یک رفیق قدیمی است گفتم کیه به جای اینکه جواب بده سرش رو بالا کرد گفتم سلام خوبی هستن چطوری بیا پایین چیکارم داری هیچ چی آب دسته بزاز زمین بیا پایین الان دستم بنده تو برو بعدا خودم میام در خونه تو چی کار داری میکنیم مگه دارم درسامو رو روون میکنم نمیدونم چرا پایین نرفتم ولی هرچه بود بهتر از این بود که پایین بروم حسن که رفت خودم پنج دقیقه بعد رفتم دنبالش هنوز خانه نرفته بود. خیرسه گنده داشت با بچه ها دستشته وازی میکرد. <تصفيق> گفت داشتی با داره حرف میزدی؟ آره چی گفتی؟ من که زیاد حرف نمیزدم. بیشتر اون حرف میزد. چی میگفت؟ حس فضولیش تحریک شده بود. گفتم در مورد جلسه فردا بود. حسودیش شده بود یا چی که گفت؟ مگه تو هم باید بیای؟ آره اصلا. اصلا وعده گرفت. گفت اگه نباشم حیف میشه اما قضیه عزیزم رو لو دادم لزومی ندارد که همه همه چیز زندگی آدم را بدانند. گفت دیگه چی؟ دیگه همین همین همین؟ آره به جده اگه شک داری مایش تلفونه زنگ بزن از خودش بپرس ولی معلوم بود که تا تای خط رو خوانده است گفت بعداً تقش در که داستان چیز دیگه بوده من میدونم تو آه نه خیال تخت باشه اوضاع از هر لحاظ تحت کنترله. به صد که احتمال یک احتمال نمیداد که یک رودهای راست و شکم من باشند ولی ترجیح داد موقتا بحث را کش نیاورد. گفت راستی بقیه پول چیکار کردی عباس؟ حالا میگم بهت یه خیالایی وسهش دارم عین حرفی رو که لاله زده بود تحویلش دادم دوباره گفتم خوب شد یادم داختی بر جزوه جزو داری برام بیار جزو نه الان نیست که پس مال کی یه اونا مال بعد از ورودته ساده ای خود لاله گفت ازت بگیرم تا گفتی منم باور کردم به جون مادرت راست میگم مگه نمی بیننی هم دعوتم کرده. الان که ندارم باید برم از روش کپی بگیرم بهت بد بدم. خب مال خودتو بده؟ نمیشه اونارو رو که خودم لازمشون دارم باید کپی بگیرم. خب بده من خودم میرم کپی میگیرم برای فردا بر روونشون کنم. لاله گفت وزد بگیرم. اینقدر کپنکش شدم که همه جزوهاش رو بهم داد. حتی پنج تا سی دی هم بهم داد که من روحم هم ازشون خبر نداشت. اولین کاری که ازم سر زد این بود که به خانه برگشتم و خودم رو با جزوه ها مشغول کردم. همینطور ورق میزدم و شانسکی بعضی از ها رو می‌خوندم. اولش که زیاد سردر نیاوردم. ولی هر جلوتر میرفتم، پوست سرم آرام آرام شروع کرد به داغ شدن. از هر چیزی که فکرش را بکنید توش پیدا میشد. باور کرد نبود که تمام اصرار مگویشان لای همان فرخخوا بود. یعنی هرچه چه بامبولو کلک کللا که این نامرتا سوار می کردن از توی همین جزوا در می آمد. بعد یک بار این چیزهایی را رو که من خواندم بخوانی تا بفهمید که دارم چی میگویم؟ کی فکرش را می کرد؟ از همان روز اولی که عادی برک با آن کاتالوگ آبی رنگ رو رفته اش سر وقتم آمده بود بگیرید تا قضیه آن روز کافی شاپ و چیپس و پنی همش نقشه بود پسر از چیزهای مهم و درشت درشت تا مسائل خیلی ریزه کاری مثلا یه جایش نوشته بود وقتی دارید کار را به شخصی معرفی میکنید، نباید از نقش خودکارتان غافل شوید. خودکار شما در هنگام معرفی کار درست مثل یک چوب جادو عمل میکند و یا اینکه توجه او را کاملا به سمت شما جلب کنید پس یادتان باشد که از آن درست استفاده کنید. آن روز چیزهایی از اینها خواندم که عقل جن بوداده هم بهش نمیرسید. خیلی چیزها تازه تازه داشت می می‌شد. همه حرفایی که روز اول خانه اسکندر اینها نوبت نوبتی تحویلم داده بودند از لابلای همین ورقها درآمده بود. حسن را بگو. با این حساب بابت هر کاری که این مدت رو با هم کرده بود آموزش دیده بود. یا یک جای دیگرش را برایتان بخوانم؟ حتما باید روزی دو سه بار به فرد مورد نظر منظورش من بودم سر بزنید چون او بعد از جلسه معرفی مانند آهن گداخته ای است که تا سرد نشده باید ضربه نهایی را به او وارد کند وگرنه در ادامه هیچ کاری موثر نخواهد بود چلل خالق به همین وقت ساعت کلمه کلمه این حرف ها را به اسم استراتژی همان تو نوشته بود کور شوم اگر چاخان کنم های یاد ملت می‌دادند که شیطان می‌گفت ای والله. تازه فهمیدم که چرا تا قبل از ورود اجازه نمی‌دهند دست هیچ به این صاحب برسد. اینها اولش فقط خودشان با خودشان محرمند. ولی اگر باشان دست علی بدهی، حاضرن همه فوتوفنشان را مفت و مسلم به خوردت بدهند. کالی گشتم تا ببینم در مورد استفاده ابزاری از بازاریابهای زن جهت وارد کردن جوانان عذب بندی، تبصری، چیزی پیدا می شود یا نه؟ چیزی پیدا نکردم. ولی محال بود که اینها لاله را تصادفی سر وقت مفرست داده باشند. مطمئن بودم برای استفاده از زنها در موارد خاص حتما قوانین نانوشته‌ای دارند که به دلایل نامعلومی نمی توی جزوه چاپشان کرد. میخواهید کسی که با یک خودکار خوشک خالی آدم را جادو جنبل می کند؟ دست از سر امثال لاله بردارد. هم اینجور ورق می زدم و به حال خودم قصه می‌خوردم. جدا دلم گرفت. شاید اگر فقط یک هفته جلوتر دستم به این جازوها رسیده بود الان همه چیز فرق می کرد. حد این بود که پدر حسن یکی رو باش در می حقش نبود با من چنین معامله‌ای معامله ای بکنند. کمه کمش می از قانون شکم سیری را به هم بدهد بدهد که من جلو اسکندر آن همه خفت و خاری نکشم. از لحاظ شخصیتی از آن آدمهاش نیستم که بتوانم این جور ها را تلافی نکنم. چون دیگر اسم این کارها استراتژی نیست، بازی است. همه انسانها در زندگی‌شوناخته ضعف‌های روانشناسی دارن که نباید توی روز روشن روش دست گذاشت. کمر بستم تا شب ته‌ی همه چوب‌ها رو درآوردم. حیف که ویدا سیدی توی خانه نداشتیم، وگرنه تا آخر وقت سیلی‌ها را هم فوت آب می‌شدم که قشنگ ختم روزگار بشه. دیگر هیچ وقت نباید ازشان رو دست میخوردن